سوره توبه اعلام بیزاری خدا و رسولش نسبت به است که با آنها پیمان بسته پس چهار ماه مهلت دارید تا در هر جای زمین که خواستید بروید اما بدانید که شما نمی توانید خدا را از اعمال قدرتش عاجز کنید زیرا خداوند خار کننده کافران است این اعلام خدا و رسولش در روز حج بزرگ است به عموم مردم بدانید که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند پس اگر توبه کردید برای شما بهتر است و اگر از فرمان خدا روی برگرداندید بدانید که هرگز نمیتوانید خداوند را از اعمال قدرتش عاجز کنید و ای پیامبر اهل کف را به عذابی دردناک بشارت ده فقط آن دست از مشرکان که تحت هیچ عنوان خیامتی نسبت به پیمانشان روانه داشتند و اهدی را بر ضد شما یاری نکردند پیمانشان را تا پایان مدتش محترم شمارید زیرا خداوند خیشتنداران پرهیزگار را دوست دارد و چون ماهای حرام مهلت داده شده پایان پذیرفت مشککان را هر جای یافتید بکشید و بگیرید و به بند کشید و در هر مکان به کمین آنها بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز به پا و زکات پرداخت نمودند آزادشان بگذارید زیرا خداوند بسیار آمرزنده و با است و اگر کسی از مشرکان از تو امان خواست پناهش باش تا کلام خدا را بشنود آنگاه در امنیت کامل او را به جای امن امنخیش برسند زیرا آنها گومی نادانند چگونه مشرکان را با خدا و پیامبرش پیمانی باشند مگر با آن کسانی که کنار مسجد الحرام پیمان بستید و تا زمانی که آنها بر عهد و پیمان خویش پای بندند شما نیز عهد نگهدار باشید زیرا خداوند خیشتنداران پریزگار را دوست دارد و چگونه حرمت پیمان نگاه دارند در حالی که اگر بر شما مسلط شوند به هیچ عهد و پیوند خویشاوندی وفا نکنند با زبان شما را راضی نگه می دارند اما در دل انکار دارند زیرا اکثر آنها قومی کار و بدنیتند آنها آیات خدا را به بهای اندک فروختند و مردم را از راه نجات بخش او باز داشتند بدانید آنها عمل کرد بدی دارند در مورد هیچ مؤمنی رعایت حرمت الهی و عهد و پیمانی را نمی کنند زیرا جماعتی تجاوزکارند پس اگر توبه کردند و نماز به پا و زکات پرداخت نمودند بیشک برادران دینی شما هستند و این چونین آیات را برای اهل دانش بیان می کنیم. و اگر پیمانی را که بستند زیر پا گذاشتند و دینتان را مورد تن و سرزنش قرار دادند بدون تردید با سران کفر و انکار بجنگید زیرا به هیچ اهدی وفادار نیستند امید آنکه دست از انکار حقابیق بردارند آیا با جماعتی که پیمان خود را شکستند و پیامبر را از دیارش بیرون کردند نمی در حالی که شیوه برخورد خسمانه را اولین بار آنها آغاز کردند. آیا از آنها میترسی ترسید؟ حالان که اگر اهل ایمانید برای شما ترس از خداوند سزاوارتر است؟ با آنها بجنگی زیرا خداوند اراده کرده است تا آنها را به دست شما عذاب کند مسلما خداوند خار و رسوایشان می‌سازد و شما را بر آنها چیره می‌کند و باعث آرامش سینه‌های اهل ایمان می‌گردد و خاش قلبهای آنان را از بین می‌برد بدانید خداوند توبه هر کس را صلاح بداند می‌پذیرد زیرا خداوند بزرگ آگاه و حکیم هست. آیا گمان کرده اید به حال خود را میشوید بدون آنکه خداوند مجاهدان شما را از دیگران متمایز کند؟ همانهایی که غیر از خدا و پیامبر و اهل ایمان همرازی نداشتند؟ بدانید خداوند نسبت به عمل کردتان آگاه است مشرکان را سزاوار نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که آنها به کفر و انکار حقایق اعتراف دارند آنها حتی اعمال خوبشان هم از بین می رود و در آتش دوزخ جاف دانند. مساجد خدا را فقط کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند آباد می کند همانهایی که نماز به پا دارند و زکات پرداخت می نمایند و از چیزی جز خداوند بزرگ نمی حراسند. امید است اینان از رهیافتگان آفتگان شود آیا آب دادن به حجاج و آباد کردن مسجد الحرام را با دستاورد کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد و در راه خدا جواب می کند در یک صفح قرار می این دو نزد خداوند مساوی نیستند بدانید که خداوند اهل ظلم و ستم را هدایت نمی کند. کسانی که به حقایق ایمان دارند و با جان و مال خویش اقدام به مهاجرت و جهاد در راه خدا نمودند بالاترین درجه و مقام را نزد خدا دارند و همینان برندگان حقیلی هند. خداوند آنها را به خوشنودی و رحمت بیکران خود و به بهشتهایی بشارت میدهد که نعمتهایش برایشان همیشه گیست پدران جاودانه خواهند ماند بدانید پاداش بزرگ نزد خداوند است ای اهل ایمان پدران و برادرانی که کفر و انکار را به ایمان ترجیح دادند سرمشق خود نگیرید چنان که کسی آنها را الگوی خود قرار دهد بی تردید از ستمکاران است با آنها بگو ای پیانبر چنان که پدران و فرزندان و برادران و همسران و قیشابندان را و همچنین اموالی که اندوخته اید و تجارتی که از کسادی آن بیم دارید و خانههایی که با آن علاق مندید را از خدا و پیانبر و جهاد در راه حق بیشتر دوست دارید پس منتظر باشید تا خداوند فرمان کوبندهش را صادر کند بدانید که خدا مردم زشکار و بدسیرت را هدایت نمی کند خداوند در بسیاری از موقعیتها از جمله روز هنین شما را یاری کرد همان زمان که از زیادی تعدادتان به خود می بالیدید اما هیچ سودی برایتان نداشت و زمین با تمام فراخیاش چنان بر شما تنگ شد که آقبد از میدان رو گرداندید و فرار کردید اما بعد از آن خداوند آرامشی الهی را بر پیامبر و اهل ایمان نازل کرد و سپاهی آسمانی که شما آن نمی دیدید فرستاد و منکران حقیقت را مجازات کرد و این چنین است جزای کافران بدانید بعد از آن خداوند توبه هر کس را صلاح بداند میپذیرد و خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و باگذشت است ای اهل ایمان مشرکان ناپاکند و از این سال به بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از فقر میترسید خداوند اگر بخواهد به فضل خویش شما را از مشرکان بینیاز خواهد کرد زیرا خداوند بزرگ آگاه و حکیم است با جمعاتی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده حرام نمیدانند و دین حق را نمی بجنگید تا آن زمان که با دست خود خواز جزیه بپردازند و یهودیان ادعا کردند ازعیر پسر خداست و مسیحیان ادعا کردند مسیح پسر خداست این سخنی که با زبان خود میگویند همان گفتار کافران پیشین است خدا آنها را بکشد که چگونه از حق منحرف میشوند آنها دانشمندان و راهبان خیش را و همچنین مسیح پسر مریم را به جای خداوند بزرگ معبود قرار دادند حالان که امر شده بودند فقط خدای یکتا را پرستش کنند خدایی که جزو معبودی نیست و از هر نوع شرکی که میپندارند پاک و مبراست میخواهند که نور خدا را با دهانشان خاموش کنند در حالی که خداوند چیزی جز کمال نورش را نمیخواهد، هرچند منکران حقیقت ناخشنود شدند او است که پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را سرآمد همه ادیان کند هرچند مشرکان از این حقیقت ناخشنود شدند ای اهل ایمان بدانید که بسیاری از علمای اهل کتاب و راهبان به ناحق انوال مردم را میخورند و آنان را از راه خدا باز میدارند کسانی که حریستانه طلا و نقره میاندوزند و آن را در راه رضایت خداوند انفاق نمی کنند به عذابی دردناک بشارده روزی که همین طلا و نقره در آتش جهنم گداخته شود و با آن صورت‌ها و پگردوها و پشتهایشان را داغ کنند و به آنها گویند این همان چیزی است که اندوخته اید پس بچشید آن چرا که اندوخته اید تعداد ماههای سال نزد خداوند در کتاب الهی از روز اول خلقت آسمان‌ها و زمین دوازده ماه است که چهار ماه آن ماه حرام است. این دین پابرجای الهی است پس در این ماه ها به خودتان ظلم نکنید و با تمام توان با مشرکان بجنگید همچنان که آنها با تمام توان با شما می جنگند. و بدانید که خداوند با آنهایی است که حرمت فرمانش را پاس میدارند دستکاری در تاریخ ماه های حرام، افزایشی در کفر است و این همان چیزی است که کافران به آن گمراه می شوند. یک سال آنها ماها را حلال می کنند و یک سال حرام تا به حد نصاب ماهایی که خداوند حرام کرده برسند و به پندارشان عدد چهار ماه تکمیل شود تا از این ره گذر بتوانند چیزهایی را که خداوند در آن ماها حرام کرده حلال کنند عمل کرده زشتشان در نظرشان زیبا جلوگر می شود و بدانید خداوند قومی که حقایق را انکار کنند هدایت نخواهد کرد ای اهل ایمان چه بر سرتان آمده؟ چرا وقتی به شما گفته می شود برای سیر در راه خدا آماده شوید خشک و سنگین بر زمین چسبیده آیا زندگی دنیا را به حیات جاودان ترجیح داده بدانید متاع دنیا در برابر نعمتهای جاودان آخرت بسیار اندک است اگر به تلاش در راه حق اقدام نکنید خداوند شما را به عذابی دردناک گرفتار می کند و جماعت دیگری را جای شما می کند. بدانید که عمل هیچ زیانی به خدا نمیرساند و خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست چنان که پیامبر را یاری نکنید خداوند او را یاری کرده است درست مثل آن زمان که کافران از مکه بیرونش کردند و خدا یاریش کرد در حالی که دوم نفر بود و فقط یک تن همراه او هنگامی که آن دو در قار بودند او به همنشین خود گفت غمگین مباش خدا با ماست و خدا هم آرامش الهیش را بر او نازل کرد و به سفایی که شما نمی دیدید یاریش کرد و این چونین کلام کافران را پست و بی اثر قرار داد حال که کلام خدا برتر و پرقدرت است زیرا خداوند بزرگ مقتدر و حکیم است به راه خدا راه شوید چه سبکبار و کم مشغله باشید و چه گرفتار و پرمشغله و با جان و مالتان در راه خدا تلاش کنید که اگر درک کنید این برای شما از هر چیز دیگری بهتر است بدان که اگر راه نزدیک و قناهیم در دست رس بود از تو پیروی میکردند. اما راه دور است و طاقت فرسا. به زودی به خداوند سوگند یاد می کنند. اگر توانایی داشتیم حتما با تو همراه شدیم. آنها با این رفتار باعث حلاکت خودشان میشوند. خداوند خوب می که آنها جماعتی دروغگو هستند. خداوند تو را عفت کند برای چه به آنها اجازه دادی بمانند و به جهاد نروند آن هم قبل از آنکه راست راستگویان و دروغگویان برایت مشخص شوند آنها که به خدا و روز قیامت ایمان دارند برای آن که با مال و جانشان جهاد کنند از تو اجازه نمی گیرند. و خداوند بر احوال متقین آگاه است بدان فقط ادهی که خدا و روز قیامت را باور ندارند برای رفتن به جهاد از تو اجازه می گیرند. زیرا قلبهایشان مملو از شک و تردید است و در همین تردید حیران و سرگردانند اگر قصد رفتن داشتند بدون تردید ساز و برگی را معیام می کردند. اما خدا از رفتن آنها کراحت دارد توفیقش را گرفته و آنها را از جهاد باز می‌دارد. و به آنها گفته می شود همراه خانه شما هم خانه نشین شدید بدان که اگر هم به جهاد می جز استراب و تشویش چیزی برای شما نداشتند و در بین شما به تفرقه و نفاق می و فتنه انگیزی می کردند. بدانید که خداوند بزرگ به احوال ظالمان آگاه است. آنها قبل از این هم پتنه انگیزی کردند و تو را خراب نمودند تا آنگاه که حق آمد و دستور خداوند شفاف بیان شد در حالی که از این حکم ناخشنود بودند ادهی از آنها میگویند به ما اجازه ده تا خانونشین باشیم ما را به گناه می بدان که آنها در گناه غوتورند و جهنم بر ناسپاسان کاملا احاطه دارد اگر خیری به تو رسد آنها ناراحت می شوند و اگر مصیبتی به تو وارد آید میگویند ما چاره خیش را از قبل اندیشیده ایم و شادمان برمیگردند میگردند. <تصفيق> قلن یصیبنا الا ما الله لنا و مولانا وَ عَلَى اللَّهِ بگو هیچ مصیبتی به جز آن چه خداوند تقدیر کرده است بر ما نخواهد رسید. او بزرگ و تکیگاه ماست و اهل ایمان فقط به خداوند توکل می‌کنند. بگو آیا غیر از یکی از این دو خوبی پیروزی یا شهادت چیز دیگری را برای ما انتظار می کشید اما ما انتظار آن داریم که شما یا به عذاب الهی دچار شوید و یا به دست ما مجازات شوید پس شما انتظار بکشید ما نیز پا به پای شما چشم براییم بگو چون به جهاد نیایید هرچه انفاق کنید چه از روی رضایت و چه از روی کراحت خداوند از شما نخواهد پذیرفت زیرا شما جماعتیزده اشتکار و بدسیرتید و چیزی مانع قبولی انفاقشان نشد مگر همین که خدا و پیامبرش را باور ندارند در حالی که نماز نمیگذارند جز با کسلی و بیروهی و انفاق نمیکنند کنند جز به کراحت و ناخوشنودی داراییها و فرزندانشان تو را شگفت زده نکنند زیرا خداوند آن چیزها را در این دنیا مایه عذابشان ساخته است و بدان که در حال کفر و انکار جانشان کنده خواهد شد به خدا سوگند میخورند که از شمایند اما از شما نیستند بلکه فقط ترس سرا را گرفته است اگر پناهگاهی یا غاری و حتی زیرزمینی زمینی بیابند به آن می و شتاب زده مخفی می شود و ادهی از آنها در تقسیم صدقات و غناگم به تو ایراد می گیرند چونچه به آنها داده شود خوشنود می گردند و اگر داده نشود خشمگین می شوند. چه می شود اگر به آنچه چه خداوند و پیامبرش به آنها عطا کرده راضی شوند، و بگویند. خداوند بزرگ ما را کافی است و به زودی خدا و پیامبرش از فضل و کرمش به ما خواهند بخشید و ما فقط خواهان خداییم بدانید که صدقات متعلق به فقران و درماندگان و است که در جمع آوری صدقات فعالیت می کنند همچنین برای کسانی است که مقرر شده محبتشان جلب شود و نیز برای آزاد سازی بردگان و بدهکاران و ان چرا که مورد رضایت خداست چون دستگیری از مسافران در راه مانده بدانید این یک واجب الهی است و خداوند نسبت به عمل کردتان آگاه و حکیم است از آنان پیامبر را آزار می‌رسانند و می‌گویند او خوش باور است و حرف هر فر را گوش می‌دهد بگو این به نفع شماست که او شنونده خوبی است او کسی است که به خداوند بزرگ ایمان دارد و اهل ایمان را باور کرده است او رحمتی است برای کسانی از شما که حقایق را باور دارند اما کسانی که پیامبر خدا را می آزارند عذاب دردناکی برایشان مهیاست. برای اینکه شما را راضی و خشنود کنند به نام الله سوگند یاد میکنند در حالی که اگر اهل ایمان باشند شایسته این است که خدا و پیامبرش را خشنود کنند آیا نمیدانند که هرکس به دشمنی خدا و پیامبرش برخیزد جاودانه در آتش دوزخ خواهد بود و این یک خاری و رسوایی بزرگ است منافقان میترسند مبادا سوری در مورد آنها نازل شود؟ که نیاتشان را برملا کند بگو حال مسخره کنید خداوند آنچرا که از آن می ترسید آشکار خواهد کرد اگر از آنها بپرسی چرا حقایق را به تمسخر می گیرید می ما بازی و مزاح می کنیم. بگو چرا خداوند و آیات و پیامبرش را به تمسخر گرفتید عذر و بهانه نیاورید شما پس از ایمان آوردن خافر و ناسپاس شده اید از تقصیر ادهی از شما بگذاریم بدون تردید گروه دیگر را مجازات می کنیم زیرا گناهکارند مردان و زنان منافق همه مثل همند همواره مردم را به بدی و زشتی وامیدارند و از خوبی و خدمت باز می دارند و اهل بخشش و انفاق نیستند آنها خدا را فراموش کردند خدا نیز آنها را فراموش کرده است منافقان بدون شک زیشکار و بدسیرتند. خداوند مردان و زنان منافق و کفار را به آتش دوزخی که همواره در آن خواهند بود و داده است همین برایشان کافی است در حالی که نفرین خداوند و عذابی همیشگی برای آنهاست شما منافقان همانند ادهی هستید که قبل از شما زندگی می کردند با این تفاوت که آنها قویتر، داراتر و از نظر نسل پرتعدادتر از شما بودند آنها از سهمشان که تقدیر شده بود بهرهمند شدند شما هم بهرهمند شده اید درست مثل همانها شما در انکار حقایق فرو رفتید همانطور که آنها فرو رفتند آنها سرانجام دستاوردشان هم در دنیا و هم در آخرت تباه شد و همشان زیانکارند آیا خبر عاقبت کسانی که قبلا زندگی میکردند به آنها نرسیده است چون قوم نوح و آد و سمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و شده قوم لود همانهایی که پیامبرانشان، با دلائری روشن به سویشان آمدند بدانید که خداوند به آنها ظلم نکرد بلکه آنها خود به خیشتن ظلم روا داشتند و المؤمنون والمؤمنات اولیاء بالمعروف و ینهون عن المؤمنون. و الصلاة و یقتون الله و الله این الله عزيز حكيم. مردان و زمان اهل ایمان یا ریاور یک همواره مردم را به نیچی امر می کنند و از زشتی و پلیدی باز می دارند. نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می و از خداوند بزرگ و پیامبرش اطاعت می کنند اینها مشمول رحمت الهی قرار خواهند گرفت و بدانید که خدا مقتدر و حکیم است خداوند بزرگ مردان و زنان اهل ایمان را به بهشت هایی که نرها در آن جاری است وعده داده است و آنها در آنجا جاودان خواهند ماند جایگاهشان در بهشت های ابدی پاکیزه است و خوشنودی و رضایت خداوند بالاتر از همه این هاست. بدانید که پیروزی بزرگ همین است ای پیامبر با کافران و منافقان به جهاد برخیز و بر آنها سخت بگیر زیرا جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتی است این جهنم الله سوگند میخورند که سخن کفرالود نگفتند اما سخن کفرالود گفتند آنها پس از اسلام آوردن دوباره کافر شدند قصد کاری را داشتند که به انجام آن موفق نشدند آنها در حقیقت انتقام نعمتهایی را که خداوند و رسولش به آنها عطا کرده پس میدهند. پس چنانچه توبه کنند برایشان بهتر است و اگر از حق روی گردان شوند خداوند آنها را در دنیا و آخرت به عذابی دردناک مجازات خواهد کرد آنچنان که برایشان در روی زمین هیچ یار و یاوری نخواهد بود ادهی از آنها با خداوند پیمان بستند که چنانچه به ما از فضل و کرمش مالی ببخشد حتما از آن به نیازمندان صدقه می دهیم و آدمهای خوب و سالمی میشویم. اما هنگامی که خداوند از فضل و کرمش به آنها عطا کرد بخل ورزیدند و از تعهدی که کرده بودند سر باز زدند و به خاطر خلف وعدهی که با خدا کردند و نیز دروغ که گفتند همواره تا روزی که به ملاقات خدا بروند قلب معدن نفاق و درویی خواهد بود آیا نمیدانند که خداوند بزرگ هم سرشان را میدانند و هم نجوایشان را میشنود. بدانید که خداوند بر هر غیب و نادیدهای اشراف کامل دارد کسانی که از صدقات مؤمنان مطی عیب جویی می کنند و آنهایی را که فقط به دست رنجشان امید دارند مسخره می خداوند نیز آنها را استهزا می و بدانند که برایشان عذابی دردناک مهیاست چه برای آنها طلب آمرزش کنی و چه نکنی بدان که اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش بخواهی خداوند هرگز آنها را نخواهد بخشید زیرا آنها خدا و پیامبرش را انکار کردند و خداوند هیچگاه جماعت زشت کار بدسیرت را هدایت نمی کند آنها که به جهاد نرفتند و خانه نشین شدند و با این کار از مخالفت با پیامبر خدا شاد مانند و به اینکه با جان و مالشان در راه خدا جاد کنند رقبتی نداشتند و میگفتند در این هوای گرم و سوزان به جنگ نروید بگو آتش دوزخ گرمتر و سوزانتر است البته اگر درک کنند در حقیقت به خاطر دستاوردشان باید کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند هرگاه خداوند تو را به سوی گروهی از آنان گرداند، ادهی از آنها را ببینی که از تو اجازه حضور در جهادی دیگر را خواهند خواست. به آنها بگو، شما هرگز با من به جهاد نخواهید آمد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی پیکار نخواهید کرد. همانطور که بار اول رازی شدید تا در خانه بمانید، اکنون نیز همراه با مخالفان حکم خدا، خانه نشین باشید و چون کسی از آنها بمیرد هیچ گاه بر اون نماز نگذار و بر سر قبرش نیست زیرا آنها خدا و پیامبر را انکار کردند و فاسقانه مردند و کسرت اموال و اولاد آنها ترا شگفت زده نکند زیرا خداوند همین چیزها را مایه مجازاتشان در دنیا قرار داده است بدان که در کفر و بی ایمانی جانشان کنده خواهد شد و هنگامی که سوره نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه با پیامبرش جاد کنید مرفحین آنها خواهند گفت اجازه بده و بگذار همراه با قانونشینان ما هم قانونشین باشیم. آنها از اینکه با قانونشینان باشند خوشنودند آنها مرکز فهم و ادراکشان از کار افتاده و هیچ حقیقتی را درک نمی‌کنند اما پیامبر و اهل ایمانی که همراه او گند با مال و جانشان جهاد می‌کنند و بدون تردید بهترین ها برای آنهاست و آنها راستگار و پیروزند، خداوند برایشان بهشتهایی که نرها در آن جاریاست محیا کرده و در آنجا جاودانه خواهند زیست و این همان پیروزی بزرگ است گروهی از اعراب بادیه نشین با عذر و بهانه آمدند تا به آنها اجازه داده شود تا به جهاد نیاید بدانید کسانی که خدا و پیامبرش را انکار کنند جاد نمی کنند و خانه نشینند به زودی به کافران این جماعت مجازات دردناکی خواهد رسید بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای انفاق ندارند چنان که برای خدا و خیر خیرخواه مردم باشند گناهی نیست اگر به جهاد نروند زیرا بر نیکو کاران نیست و بدانید که خداوند بزرگ بسیار آموزنده و باگذشت است. همچنین بر آن عده که نزد تو آمدند تا تجهیزشان کنی و تو گفتی چیزی برای تجهیزتان ندارم و برگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود گناهی نیست زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند. مجازات خداوند بر کسانی است که در عین توانگری از تو میخواهند که به جهاد نیاید و از اینکه با خانواده هستند خوشنودند بدان که خداوند مرکز فهم و ادراک آنها را مهر باطل زده و آنها حقایق را نمیفهمند. و هنگامی که پیروز مندانه از جهاد به سویشان برگردید، شروع به عذرخواهی از, از شما می کنند بگو عذرخواهی نکنید که شما را باور نداریم زیرا خداوند ما را از حال و روزتان خبردار کرده است زیرا خدا و پیامبرش عمل را میبیند. بدون شک شما به سوی خداوند آگاه از نهان و آشکار باز می گردید تا از عمل آگاهتان کند هنگامی که به سوگشان بازگردید به خدا سوگند می‌خورند تا از خطایشان درگذرید اما شما از آنها دوری کنید زیرا جماعتی پلیدند و به خاطر دستاوردشان در دوزخ جای دارند برای شما قسم می‌خورند تا از آنها راضی شوید و اگر هم از آنها راضی شوید بدانید که خداوند از جماعت زشت کار بدسیرت راضی نخواهد شد اعراب بادیه‌نشین کفر و نفاقشان شدیدتر است و به جهل از که خداوند بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند حالان که خداوند آگاه و حکیم است گروهی از اعراب آنچه آنچرا که به عنوان انفاق میدهند غرامت محسوب کرده و همباره منتظرند تا حوادث ناگواری به شما برسد اتفاقات ناگبار بر خودشان باد بدانید که خدا شنوا و آگاه است و من الاعراب من يؤمن بالله والیوم الاخر و ما ينفق قربات عند الله و الرسول الا ان قربة لهم الله ان الله غفور و ادهی از اعراب بادی نشین به خداوند و روز قیامت ایمان دارند و آنچرا انفاق میکنند مایه نزدیکی به خدا و دعای پیامبر می دانند بدانید که آنها با این رفتار به خداوند نزدیک شدند و به زودی خدای بزرگ آنها را در رحمت بیکرانش داخل می کند زیرا خداوند بسیار آموزنده و باگذشت است اولین گروه از مهاجران و انصار و نیز کسانی که به نیکی در پیان ها رفتند بدانند خداوند از آنها راضی است و آنها نیز از او خشنودند. و بدانند خدا برایشان بهشت هایی که نرها دران جاریس محیا کرده است تا در آن جاودانه بمانند و حقیقتاً این پیروزی بزرگی است. و گروهی از اعراب بادیه نشین که در اطراف شما هستند منافقند. حتی گروهی از اهل مدینه نیز سخت در نفاقند تو آنها را نمی اما ما آنها را می و به زودی دو بار مجازاتشان خواهیم کرد و پس از آن به سوی عذاب بزرگ ره سپار می شود به گروهی دیگر به گناهانشان اعتراف دارند که اعمال نیک را به کارهای زش دالودند امید است که خدا توبهشان را بپذیرد زیرا خداوند بسیار آمرزنده و با است از اموال آنها صدقی برگیر تا تطهیر و پاکیزشان کرده باشید و برایشان دعا کن زیرا دعای تو برای آنها ماگه آرامش است و بدان که خدا شنوا و آگاه است آیا هنوز نمیدانند این خداست که توبه بندگانش را می و صدقات را قبول می کند بدانید که خداوند بزرگ بسیار توبه پذیر و باگذشت است و بگو عمل کنید و بدانید که خدا و پیامبرش و اهل ایمان نظارگر اعمال شما هستند به زودی به سوی خدای دانای نهان آشکار بازگردانده خواهید شد و او شما را از عملکردتان آگاه می کند به گروه دیگر کارشان به امر خدا واگذار شده است یا آنها را مجازات می کند و یا توبه را می پذیرد و خداوند بزرگ او و حکیم است. و کسانی که مسجدی می سازند برای زیان رساندن به مردم و ترویج کفر و ایجاد نفاق بین اهل ایمان و آن را کمینگاه کسی قرار میدهند دهند که از قبل با خدا و پیامبر در جنگ بوده و با این حال قسم می خورند که جز نیکی و خیرخواهی نیتی نداریم بدانید که خداوند بر دروغگویی آنها شهادت میدهد. هرگز در آن مسجد پا گذار. آن مسجدی که از روز اول بر پایه حرمت گذاشتن به خدا بنا شده سزاوارتر است که در آن پا در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه شوند. زیرا خداوند پاکیزگان را دوست دارد. آیا؟ کسی که آن را بر اساس حرمت گذاشتن به خدا و خوشنودی او بنا کرده بهتر است یا کسی که اساس آن را بر لبه پرتگاه سستی بنا نموده که هر لحظه در آتش دوزخ فرو ریختنی است بدانید که خداوند جماعت ظلم پیشه را هدایت نخواهد کرد بدانید آنچه که بنا کردند پیوسته مایه تردید قلبهاشان خواهد بود مگر که قلبهایشان پاره پاره گردند و خداوند آگاه و حکیم است این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بینن لهم الجنه خداوند از اهل ایمان جانها و اموالشان را خرید تا بهشت برای آنها باشد کسانی که در راه خدا جاد کردند کشتند و کشته شدند برای آنها وعده حقی از جانب خداوند در تورات و انجیل و قرآن آمده است و چه کسی خوشغولتر از خداوند است پس بدین خرید و فروشی که کرده اید شادمان باشید و بدانید که این یک پیروزی بزرگ است توب کنندگان، عبادت کنندگان، ستاگش کنندگان، روزداران، رکوع کنندگان، سجد کنندگان، کنندگان به نیکی و بازدارندگان از بدی و نگهبانان عوامر الهی به همه این مؤمنین بشارت ده. سزاوار نیست که پیامبر و اهل ایمان برای مشرکان طلب آمرزش کنند، هرچند که آنها از نزدیکانشان باشند. آن هم بعد از آن که دانستند آنها اهل دوزخند و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش صرفا به خاطر وعدهی بود که به او داده بود و انگامی که فهمید او قطعاً دشمن خداست از او بیزاری جست زیرا ابراهیم خدا ترس و بردبار بود خداوند هیچ قومی را بعد از آن که هدایتشان کرد گمراه نمی کند مگر آنکه برایشان بیان کند که از چه بپریزند و خداوند بر هر چیزی آگاه است فرمان ربایی آسمان ها و زمین از آن خداست زنده می و می, می و شما را غیر از خداوند بزرگ یار و نیست خداوند رحمتش را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار و کسانی که در آن لحظات دشوار از او پیروی کردند نمود در حالی که نزدیک بود توجه ای از آنها منحرف شود و از جهاد باز بماند اما خداوند توبشام را پذیرفت زیرا خداوند بزرگ بسیار مهربان و باگذشت است و نیز آن سه نفری که در مدینه ماندند و به جهاد نرفتند زمین با همه وسعتش بر آنها چنان تنگ شده بود که جایی برای رفتن نداشتند تا آنجا که حتی جان در تنشان کلافه بود عاقبت دیدند که هیچ پناهگاهی جز خود خداوند نیست در آن هنگام خداوند و آنها توفیق توبه داد و توبهشان را پذیرفت زیرا این خداونده است که بسیار توب پذیر و باگذشت است ای اهل ایمان، حرمت خدا را نگاه دارید و همواره با راستگویان باشید. اهل مدینه و اعراب بادی که در اطراف آنها هستند نباید که از اطاعت پیامبر خدا تخلف کنند و جان خودشان را بر جان او ترجیح دهند. باید بدانند که در راه خدا، هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی به آنها نمیرسد و نیز هیچ گامی که موجب خشم کفاه شود بر نمی دارند و هیچ آسیبی از دشمن نمی بینند مگر آنکه به واسطه آن پاداش عمل سالی برای آنها نوشته شود بدانید که خداوند بزرگ پاداش نیکوکاران را زایع نخواهد کرد و هیچ مالی چه اندک و چه فراوان انفاق نمیکنند و هیچ بیابانی را نمیپیمایند. مگر آنکه بر آنها بهترین پاداش الهی به سبب عملکردشان مقرر شود. حال که اهل ایمان نمی همه همگی سفر کنند پس چرا از هر گروهی تعدادی برای کسب دانش دین سفر نمی کنند تا بدین وسیله هنگامی که به سوی قوم خود برمیگردند آنان را از نافرمانی حق برحضر دارند امید آنکه از این کارها حضر کنند ای اهل ایمان با کافرانی که نزدیک شمایند یند پیکار کنید تا شما را در ایمانتان محکم و مسمم بیابند و بدانید که خداوند با است که حرمت عوامرش را نگاه می‌دارند. هرگاه سوره نازل شود ادهی از آنها میگویند این سوره ایمان کدام از شما را زیادتر کرده است به آنها بگو کسانی که ایمان آوردند همان موقع بر ایمانشان افزودند و آنها به فضل الهی خوشنودند اما کسانی که در قلبهاشان مراکز ادراک و فهمشان بیماری نفهمی است همواره پلیدی بر پلیدیشان می و در حال کفر از دنیا خواهند رفت آیا آنها نمی بینند که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش می شود؟ با این وجود باز توبه نمی کنند و پندی نمی گیرند. هنگامی که سوره نازل شود منافقان به یک دیگر نگاه میکنند و میگویند آیا کسی شما را میبیند؟ اگر نه از مجلس پیامبر خارج شد سپس از حقیقت منصرف میشود حالا که خداوند قلبهایشان را از حقیقت منصرف کرده است زیرا آنها جماعتی نافهمند براستی پیامبری از جنس خودتان به سویتان آمده است بدانید که رنج و اندوه شما برای او سخت و گران است و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به اهل ایمان مهربان و باگذشت است اگر آنها از حقایق روی به گردامند باکی نیست تو بگو خداوند بزرگ که جز او هیچ معبودی نیست مرا کافی است در همه امور بر او می کنم که او پروردگار عرش عظیم است فَإِن تَوَلَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ الله العلی العظيم راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم